بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد در مورد حضرت عثمان بن افغان رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در پنج سال اخیر خلافت در پنج سال آخرش تقریبا مشکلاتی درست شد بعضی از بغاط و سرکشها اعتراضاتی رو وارد کردند، شبهاتی وارد کردند. اما در رأس اینها عملا هم حرکت صورت گرفت برای انتقال قدرت و برقرار کردن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. در این صورت اکثر شبهات را جواب دادیم از که اکثر اشکالات و گفتیم تقریبا داریم به پایانش میرسی اشکالات را یکی از اشکالات این است که چرا حضرت عثمان رضی الله تعالی بعضی برخی را تبعید می‌کردند کوفه و سرزمین عراق وقتی که مرکز حمله به سرزمین فارس بود و از عراق به فارس حمله میشد قبایل مختلف عرب در عراق برای زندگی رفته بودند ها مجاهد بودند و بین این مجاهدین سه قبیله بزرگ زندگی میکرد از قبایل بزرگ یکی از اونها بنو اسد بود قریش بودن و یمنی ها یمانی ها بودند عموما فرمانروایان یا عمرای سرزمین عراق کوفه بسره اکثر از قریش بودن لازما قبیل بعدی هم که در کوفه زندگی میکرد این قدرت را تحمل نمی کرد و بودن امرا از قبایل قریش برای اونها خوشایند نبود اما علتی که همیشه قریش را بیشتر از بقیه نور توجه قرار میدادند این کلی نبود از قبایل مختلف هم در پستهای مختلف استفاده می خیلی جاها از حتی در امامت نمازها از بردگان استفاده میشد در امارت ارتشها سپاه سالار بودن هم از بردگان استفاده می مانند اصامه بن زید رضی الله تعالی که زید بن حارسه غلام خود نبی کریم بود صلی الله عليه وسلم در آخرین ارتشی که از مدینه حرکت کرد و خود نبی مکرم سلام صلی اللہ وسلم آن را ترتیب داده بودند. حضرت اسامه امیر بود جاهای دیگر هم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ و تعالی عنہا از اونها استفاده میکرد. حسب تواناییها. اما قطعا قریش بیشتر نمایانتر بودند. علتی است چون که قریش یک قبیله بود که تمام قبایل اونها رو قبول داشتند. و وقتی که قبیلهای را مردم قبول داشته باشند اطاعت آسان‌تر میشه قبولیت وقتی بیشتر باشه نظم بیشتر میآید به خاطرین در امر خلافت تنها گزینه‌ای که مناسب بود بعد از نبی کریم قریش بودن انصار خواستن که خلیفه بشه اما گفتن نه شما که نمیتونید چرا نمیتوانند خاطرین که تنها قبیله تمام عرب داشت قرش بود اینجا هم به این صورته پس یمنی ها و قبایل دیگر برای اونها ناخوشایند بود ناراحت می شدن. وقتی که ناراحت می شدن قطعا شلوغ می کردن و دنبال تحرکاتی بودند، شورش های بودند، حرکت های نامناسبی بودند. سید ابن عاص مرتب همین حرکت ها را به حضرت امیر عثمان ابن افر رضی الله تعالی گزارش می داد. در کنار او عبدالله بن سعده ابن صراح او هم حرکتها را گزارش میداد. حالت حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی فرمودند که این شوریشی های داخل کوفه و عراقه اینها رو تبعید کنند به شام پیش حضرت امیر معاویه به در رأس اونها که باید تبعید باید میشد، مالک بن عشتر نخیی بود. این هم تحبیر چرا فرستادن پیش حضرت امیر معاویه چون امیر معاویه رضی الله یک سیاست مدار تمام ایار و یک انسان تجربه, تجربه کار خیلی انسان ای بود خوب انسانها رو میشناخ و خوبم هم عدم میکرد از بینش سیاسی خیلی بالایی برخوردار بود عموما افراد اونجا میفرستادند در رس این همه ها رو جمع کردن فرستادن کسی که حرکت سیاسی زیادی داشت بین اونها والک اشتر بود که دره یک حرکت سیاسی بود و خلاف خلیفه وقت هم صحبت میکرد حرکت داشت فرستادن پیش حضرت عمید موابیه اونها رو خوب نگاه کرد حرکت اونها رو دید در یک گزارشی که بعدها در جاهای دیگه من خوندم نوشته این افرادی پیش من فرستادی اینها قلبهایی های دارن بعد اینا مثل گرگات در رنده هستن. اونا پول داد سرمایه در دا اونها نزدیک خودش برد خوب تحقیق کرد. آخر گزارشی نوشت و حضرت امیر معاویه این افراد را پیش خود پذیرش نکرد. لا نهها را سرزنگشان بیرون کرد. چرا چون اونجا شلوغ میکردن؟ نخواست که جای خودش روا هست یا امیر من امیر هست؟ کسی اونجا حرکت نامناسب داشته باشد و اینها رو به کوفه فرستا هر از سؤال این اونها می چرا تبعید می آیا مگر این تبعید این اصل داستان آیا مگر این تبعیدی ای که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنوه کردن مگر این تبعید یک گناه بود آیا امروزی اگر گناه چرا این روز تبعید می از تبعید که بر های بدتری میشه، شه به دار از بین ترول میشن اون که فقط تبعید میکرد نمیکوش، قتل نمیکر خوریزی نمیکرد برای اینکه که برای آرام کردن صحنهها، ها خاموش کردن فتنهها، زمانی که حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی انهو در راست خلافت بودن هنگامی که رومی ها خواستن بر اون کشتی مسلمان ها در ساحل حمله بکنن امپراتور روم خواست که همین دوباره داشته باشه در همین زمان بین بین ارتش مسلمانها، افراد شورشگر برخلاف حکومت اسلامی دعوت می زمان باید تمام احزاب اونجا متحد میشن تا دفاع از کیان اسلامی از مرزه از خود آین اسلام دفاع بکنه مانند محمد ابن ابی حضیفه افراد دیگر اینجا تحریک میکرد مردم را برخلاف اون الجهاد می گفت شما داری میری به ساحل به دریاها ها میری در چون در دو جای ساحل اونجا محل جنگ بود گفتن که شام بود روم این دو منطقه محل جنگ بود در حال ایک مدینه نیاز داره بر مجاهدی گفتند چرا؟ گفت واید این ظالم را بر بدارید که داره حکومت را به بستگانش واگذار کرده بعد اینها که رفتن ارتش اسفن به ساحل رسید خود را اونجا رسوندن بین همونها تحریک حرکات نادرسی رو اینها دیگه داشتن اما حضرت عثمان خیلی بردوار بود اینها وقتی که می رسیدن به وزارش منتقل میشود، باز هم دستور گردن زدن نمیداد هر هرکسی از حقای امروزی اگر اون زمان می بود که قتل آمی کردی رو چون غیث فتنه معلوم بود اما باز هم این کار رو نکردن دستور می داد برای درمی. یک روزی اشکال بود چرا حضرت عثمان بر روش دو خلیفه ما خودش عمل نمی کند این اشکال بود چرا دور روش دو تا خلیفه قبلی عمل نمی کند این بحانه بود برای براندازی کردن حضرت عثمان رضی الله تعالی ها که دبای نهارو متوجه می کرد با اونا صحبت میکرد، این کارها رو نکنید سکوت می کردن. بعد از اون می رفتن باز هم شیطانی شروع می و شورش و تحریکات شروع می شود به هر حال اینجا هم هر کسی هم در رأس می بود همین کارها رو می اما فقط حضرت عثمان از تبعید کار گرفته از تبعید کار دیگر هم انجام نداد و یک روزی زمانی که حرام رو که توسعه حرم مکی رو بدهند اونجا فرمودند که هر تدرون ما جرعه کم علیه میدونی دونی چیز شما رو بر من خیلی جرعه داده جری کرده ما جرعه که الله حلمی بردواری من شما رو اینجا جور داده و جری کرده در حالی که اگر همین کارها رو حضرت عمر ابن خطاب کرد اعتراض نداشتی چرا؟ توش شما رو با لگدها له می کرد و باشالله شما رو تنبیه می کرد و از صحبتاش ما رو خاموش میکرد اونجا این جرعتار نداشتید چون اگه من بردوارم من نرمم از نرخویی من داره سو استفاده میکنید خودشی چیز رو در حالی گفتن اگر تمام این حرکت ها تمام این حرکت ها زمان حضرت عمر میگودن این کاری دارم میکنن هیچ از شما هم این اشکالی رو نمیگرفتن به حال، این بیهوده ای بودن که بعضی خاطر محبت پست و مقام شلوغ می کردن بیهوده بیهوده وارد می دو اختلاط اقوام متفاوت در جهان اسلام باید اختلاط ها کمی عادی می باید هم دیگر تحمل می اما هر اختلاطی اول داره حرکتی هست هر یک گروهی و گروه دیگر قاطی بشه اختلاط داشته باشند در اختلاط ها اول چه میشه؟ قطعا اول دارایتیا یتقانیم تحمل نمیشه اگر گوسفندی رو به گوسفندا گوسفند جدید بر گزفنده قدیمی هم بیا اول نزدیک نمیذارم برای علف خورده هم نمیذارن اونو ترد میکنن می دور میزنن اما اگر این که دووار عادی بشن اختلاط انسان ها بعد از یک انس بگیره همدیگه رو بشناسن در ابتدا چون زمان حضرت عثمان رضی الله عنه گسترش فتوحات خیلی زیاد بود اختلاط خیلی زیاد شد تنوع قومها اختلاف زبانها رنگها اقلیمها و همچنین مختلف بودن افکار اینها دیگه دارای یک سری های بود که باید این می بعد اینها کنترل میکردن بعدها هم ادامه داشت تا که بعدها اینها کم کم آرام شدن در حال این اشکالات یعنی حضرت عثمان ابن افان می گیرند.